بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام وقتی که قعد سراسر مصر را فرا گرفت و این قهد کم کم به مناطق دورتر از مصر به کنعان هم اصابت کرد حضرت یوسف علیه الصلاة و السلام نسخ کردند گله و گندمهایی که به مردم داده می شد جیروندی کرد آزوگه های مردم را پس این هم یک تدبیر بود تدبیر پیغمبرانه برای دفاع و نجات و بیرون آمدن از یک محلکه بسیار بزرگ پس بنابراین این به اثبات می رسد که اگر در صورتهای مشکل و مسائل حاد حاکم وقت میتونه روی اجناس قیمت گذاری کند یا بعضی چیزها رو جیره بندی کند به صورتی حضرت یوسف علیه السلام این کار رو انجام دادند و بنابراین وقتی حضرت یوسف علیه صلات و سلام در دربار حکومتی خودشان هم اعلان فرمودند روزانه فقط یک وارد قضا ما میخوریم قضای بیشتر هم نباید در کاه پخته بشه زمانی که در اسلام نبی مکرم اسلام صلی عليه علیه وسلم مدینه طیب تشیففرما بودند فقر و فاقع بر اهل مدینه فشار آورده بود دستور فرمودند که از گوشت قربانی فقط تا سه روز می توانید آزدوقه بردارید بیشتر از آن حلال نیست و به همین صورت مردم به اندازه سه روز گوشت برمیداشتند و الباقی رو خیرات میکردند تا اینکه دوباره این امر منسوخ شد تا زمان حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی دوباره هم بر مدینه فقر حمله کرد وقتی دوباره فقر اومد بازم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی بر مردم اجوار کردند که فقط تا روز می تواند از گوشت قربانی بر بدارید این حدیثم در کتاب صحیح بخاری کتاب الاضحی اومده این پایبندی را و این بسیلا تقسیم بوشت و جیربندی کردن به خاطر نجات مردم از فقر را در مدینه منور یک بار نبی مکرم اسلام چونکه شارع بودن صاحب شریعت بودن اجرا کردن و یک بار سیاستن حضرت علی بن نبی طالبه رضی الله تعالی و همین کارو انجام دادن این هم برگرفته از تعالیم اسلامی و الهی هست حالا تقسیم وقتی که رسی رسید سرزمین کنعان حضرت یعقوب علیه الصلاۃ ده نفر از فرزندان برومند خود را فرستادن برای تهیه آذوقه به مصر فرمودند که من شنیده هم در مصر حاکمی عادل و خیرخواه و خیر اندیش بر کار آمده است و برای مردم آذوقه تقسیم میکند شما هم برای تهیه آذوقه به مصر بروید وقتی که برادران به مصر رسیدند حضرت یوسف علیه السلام و از اونها با یک شام و شوکتی استقبال کرد اونها رو شناخت اینها برادرانند و این پیغمبر بود دید پیغمبرانه وزدکاوت پیغمبرانی حضرت یوسف علیه سلام داشت اما چقدر مهربان چقدر مهربان اصلا به خودش هم نکشید. وقتی که اونها آمدن و اونها رو شناخت هم در چون در جلال بودن در لباس فاخرانه زندگی می و در کاخ بودن اونها گمان نمی که این یوسف باشه علیه السلام به خاطرین اگر هم گمان می نمی چهل سال از این واقعه رد شده بود آنها را با یک پذیرایی خاصی مورد استقبال قرار دادن و از آنها خوب پذیرایی که بهترین قضا به آنها داد و امکانات رفاهی آنها را فراهم کردند در کاخ در تالار شاهی از اونها پذیرایی شد پرسیدند که شما اینجایی نیستید میشنوا شما اهل انجائی. از کجا آمدی شما گفتند که ما از کنا این اینجوری نباید شما جاسوس باشید خاصه کوی اون بی‌سلاح جهت کلام را به طرف اونها ببره تا هم اونها کمی منحرف بشن از یوسف علیه الصلاۃ و سلام و هم بتونه با به بنیامین را به طرف مصر بکشونه ده بخاطری فرمودن که شاید مثل جاسوسی گفت نه ما جاسوس نیستیم فقر بر ما حمله کرده و ما هم فرزندان یعقوب نبی الله هستی ما پیغمبرزادی هستی جاسوس نیستی بعد گفتن که از پدر بگید پدرتون کیه؟ تعریف کردن چند تا برادری گفت ما دوازده تا بوده یکی از برادره در امام خورده سالی رفت به اونجا همونجا گم شد یکی دیگر هم که محبوب پدر ما هست خیلی پدر او رو دوست داره و از خودش جدا نمی کنه حبود اگر شما راست میگید بعد اون برادرتونو با خودتان بیارید نگاه کن من دارم خوب از شما فزیرائی میکنم و کامل به شما من انایت میکنم البته با باید در صدیبت که اومدید مثلا مصر باید با برادرتون بیارید اگر نیاوردید من میدونه شما دارید دروغ میگی. برای اثبات کلامتان باید شما چنین کاری رو انجام بدهید حالا حضرت یوسف علیه صلات و کار خودشو در جمع کامل مضبوط و مستحکم کرد اینا وقتی که اومدن ولما جهزهم جهاز هم به قال اطونی بی اخین لکن کرد کاروان را کامل یک باری مید به هر نفر سده کیلو گندم میداد وید سده کیلو گندم رو نایت کردن خبون حالا داری میری شما اما سری بعد که اومدی برای گرفتن آزوغی دست خالی نمی آیده ببینید که من دارم به شما میدن علا طران انی میبینید که من چقدر کامل داره انایت میکنم پس من کامل کار خود رو انجام دادم و سری بعد حالا بیاری چون اگر نعاردی پس معلوم میشه شما در دروغ میگی و آدم های درست نیسته شای جاسوس باشی برای اثبات کلام باید اون برادر بیاورید. وین لم تعطونی اگر هم نہ برباب را در نیامدی حسین پشیمن اونجا هم در کار نیست و شما هم اینجا که اسنے از شما دیگه پذیرائی نمیشه در همین زمان که اونها را فرستاد اونا چه تقال قاول سنراود عنه الله ما که تلاش میکنیم پدرشو آماده میکنیم که بتونه فرزند را با ما بفرستد و ان لا و حتما نکار رو ما انجام خواهیم داد و اینجا وعده دادن وعده کردن احد پیمان دادم و حضرت یوسف علیه السلام برای انجام این کار که حکم ما دستخالی نمی آین ما به اسمات میرسانیم، اون چیزی که اینجا در محضر شما اون چیز رو گفتیم وقتی که خواستم بر بگردم و قال لفتیانی حضرت یوسف علیه السلام فرمودن و بکی به همون بسلا زیر دستان مامورا که داخله همین بار گندون اونا ها بزاعت ها رو بذاری ان او کی که پرداخت کرده بودن در مقابل گندون اونا ها داخل همون بارشون بذاری تا کی اونا ها بگردم. بگردن چرا این کار رو انجام داد؟ به خاطر این که اینو از جانب خودش داد پادشاه بود اینجور نبود که ناحق بیشتر برداشت میکنه، نه اما یه حقی در حکومت دارست مزدی به او بیرسید مانند نبی مکرمی سلام صلی الله علیه و سلم وقتی جهاد میکردن در مال غنیمت یک قسمت مانند یک مجاهد سهمی برد غیر از اون خمسی که مال نبی کریم بود و غیر از مال صفیق میشان شون می هم مال صفیق می رسید و هم خمس و اما یک سهمی بنوانی یک مجاهد هم سهمی برد این حق اونجا داشتن حضرت عیسی علیه صلی این حقی برای خودش داشت. و موزد اینها رو از جانب خودش پرداخت کرد اینجور نبود از بیعتلمات بدون از اجازی بره بداره از جانب خود پرداخت کرد و, و برادران را با مال و سرمایه به طرف کنان فرستادن گفتن کنان امروزه در فلسطین هست که شهر الخلیل واقعی هست این برادران از اینجاد وقتی که فارغ شدند و رفتند به محضی که این کار چرا که لعلم یرجعون این است که بتونه اونها بر بیگردنه چرا؟ چون اینها فقیر و در کناران قحط هست. اگر اینها پول نداشته باشن برگشت اونها این مشکل میشه نمیتونه دوباره بیاین. بعد از اینجا سرمایی باشه تا اونها بتونن با اون سرمای دوباره مثل برای خرید گندم بیاین. پس پول هر دست اونها دا تا اون تر و سیاستش درست عمل بکنه. و دو اینکه فرمان این پولو من داخل این کاروان بذارم و پدر. حضرت یعقوب علیه السلام و السلام اگر اینها رو ببینن و اینها رو بشناسن بس میگن که ها اینها امانتم و مال امانه باید بازگرداده بشه به صاحبش با اینها رو میفرسته پیش من و دوباره اینها میآین مجبورم میآین هم ملاقاتی میشه و هم برادر رو پیش من میآورم این کار حضرت یوسف علیه الصلاۃ و السلام برای اون روابطی که پدر رو به طور ملاقات میکنه اما یک سوال این جماعت میشه 40 سال از این داستان رد شد اما یوسف علیه سلات و یک بار هم پدر رو اطلاع نداد چرا که میتونست در زندان میتون نامه بفرسته در کاخ از میست میتونست بسیل کاروانه هایی میرفته خبر بیده ها که به منصف بزرگ حکومتی رسید باز همه خبر رو نداد چارده سال رد شد باز خبر نمیداد اصلا اطلاع برای پدر نمیداد که بنا زنده هم. من هستم پدر خیلی نگرانه چرا این کارو نکن؟ در هیچ کتاب و حدیثی اصل ایجاد را بیان نشده. چرا این کارو نکن؟ فر یک روایه تی در اول داستان گفتم که هنگامی که کاروانی اومده بود که مالک ابن زهر بیم که بر اونجی از کنعان کردم شدید بگو که پسری پس با این شکل اونجا من دیدم فقط همین قا اطلاع رسونده بود. تا اون یک روایه. اما بعد هدیه اتلاع چرا نرسند؟ این تکوینی هست گویا که یا اللہ رب العالمین از دین حضرت یوسف اینو بیرون کرد به بی این طرف توجه نکند یا این که اللہ رب العالمین من کرده بود اجازه خبر ندارید خبر نده نداری نداری چرا؟ چون کشاید این احتمال داره اللہ رب العالمین خاص و شدید حضرت یعقوب را برداره چون وقتی که حضرت ابراهیم علیه صلات و کامل وابسته حضرت اسمایل شده الله فرمودن که حالا بر اسماعیل زدی بکن من وابسته باشه اینجا یوسف که کامل وابسته شده بود الله رب العالمین خواست که دوباره قلب را فارغ بکنه برای خودش و قلب یعقوب علیه الصلاۃ و السلام برای فارغ برای الله رب العالمین باشه این است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و فرمودن که اگر من کسی را دوست میگرفتم لتخس او وابکر خلیلا من او باکسی دیگر دوست سبیب می گرفتا اما ولکه خلق الاسلام فهمون دوستی برادری مسلمانی بیشترنه یعنی قلب من مخصوص ذاتی وارده آلا این امکان داره تل رب العالمی خواست این قلوب قلوب انبیا مخصوص خودش باشه و محبت و رو از دلون حب بیرون بکنه و مقام و نهار اللہ رب العالمین باعلامی به هر حال وقتی که رفتم فیش پدر و فلم فلما رجعوا پیش به در رسیدن زن یا يا ابانا منعنا من الخير پدر حالا دیگه داستان رو بیان کردند تعریف کرده ما رفتیم مصر عجب انسان خوبی بود خوب پذیرایی کرد از ما و استقبال خوبی به جا از ما کرد و از این پذیرایی خوبی صورت گیری خوب اکرام کر خوب ازاز کرد خوب ایزاز کرد ما را با یک صورت خیلی خوبی دوباره بدرانه کردن و اما در ضمن این ها شدند بعد از این حرف به ما هم گفتن که زمانی با برادرنا آمدید اینجا نزدیک من هم آیده من امننل که دیگه ما اینجوری گفتن یعنی قبل از اینکه خود بار رو باز بکنن به وحی رسیدن در محضر حضرت عاقب علیه الصلاۃ و السلام اونجا گزارش دادن دا سفر رو بیان کرد اینجوری سفری بوده و این حالا در سفر پیش اومده فارسلمان اخانا نقتل و انا له لحافظون با ما برادر ما رو بفرست نکتل دوباره ما می آوریم گندوم و ان الله حافظور ما محافظه بیرنی آمین عجیبه اونجا در یوسف گفتا کہ یوسف رو بفرست که نالعب و نرتا و اینا له لحافظور بازیمی کوری بیچری میخلی بی تفری باشه و اینا الله لحافظور ما محافظه حضرت یوسف انجا همون ان کلماتو گفتا نقتل و اینا لول حافظو. یک گندومی می آوریم بخاطر بنیامین و از اون ما حفاظت می کنیم در خود تعبیری کلام همون تعبیری گذشته حضرت یوسف بود یعنی گویا که دوباره در ذهن حضرت یعقو علیه سلات و سلام همون داستان یوسف تدائی شده. همون کلاماتو بکار بردن ما اینجوری می کنیم که اون کاری قبلن کردیم و چنین چیزی زومه من حضرت یعقو علیه سلات و سلام اون در لیچ هر سالی وقتی زنده شد ناراه شد. قبول نکرد نه حالا نمیشه چون شما قبلا نه همین چیزو گفتی بودین حال حال آمانو کم امن اعتماد بکنم. اگه با آمانت کم علی اخیه من قبل قبلا کارو کردم. اعتماد کردم. برابرش دیگر یادشونه. همون کلماتو بکار بردند دوباره فوران تو یادشونه. بله. اونجا کارو کردید اینجا همون کار داری شما دید مورد اعتماد نیستید حالا داستان فرق میکنه اونجا داستان چیزی دیگر بود اب اینجا دروغ نمی گفتن. چرا حضرت یعقوب علیه صلات و السلاط همون چیز رو دوباره فرمودن بخاطرین فرمودن که تو اینها داره سابقه بری بودن حضرت یعقوب علیه صلات و صلاح اینها رو می شناخت و کار اینها بر حضرت یعقوب پوشیده نبود. داستان دروغ قمیست را حضرت که فهمیدن که دروغ هست چون که داره سابقه بدی بودن، و خاطر سابقه بد اینجا حضرت یاگو علیه السلام فرمودن که شما قبلا چنی کاری کردید شما مورد اعتماد نیستی اما فرمودن که فالله خیر و و ارحم و راهمید چون فرمودن؟ گفت من قبلا شما رو محافظ قرار دادم و این داستان رو آوردید اما حالا الله رو محافظ قرار میدم. چل فرده داستانها با هم فرق میکنن. فن بود اونجا من شما روشما اعتماد کردم داستان به این صورت بود. بعضا گی برادر بعدی رو می بعض هم میگی ما محافظی اما من روشما اعتادنا میکنم فلا او خیر محافظه رو الله اعتماد میکنه الله محافظ و نگهبان هست. اون بهترین محافظ هست بهتری ررحن کنند بیاه. یا وقتی اینجا حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام روخ کلام را به طرف الله رب العالمین بردان الله رب العالمین هم هم یوسف را برگردان و هم دنیامی را برگردان این دست قبلا نگاه کن اونجا حضرت یوسف فرمودند که خدای من در این زمین سرزمین جای و دعا کردند ورزق می هست لا احتسب الله رب العالمین پادشاهی مصر را قبلا حدیث رو خوندم اونجا نبی کی فرمود اگر یوسف روز اول چیزی می گوید زندان نمیره یا اونجا فر حضرت حتییصبحال صلات السلام: سر اوض کرد می انندرب ب فسهاه و شطان منو پیشعاقات یادی ب کو یک زنسان نیکی در زندان هست این چیز اونجا فرمودن. اما نگاه نفرمودن نفر الله اللهان از زندن کن وقتی جوری فر بوده فانسهاه و شیطان بعد تفااصلیت مختلف قبل دیک کردیم د قول اومده و بعضی شایطان فراموش کرد همون کسی که رفتی بود. و بعضی میگن که، شیطان فراموش که یوسف را کہ اللہ رو بگی چون که فراموش کرد اللہ چون اینجا یوسف علیه الصلاۃ والسلام اونجا متواصل شد به پادشاه که من رها بکن کار اشتباهی نبود کار گناهی نبود اما شان پیغمبر نبوده اللہ رب العالمین 7 سال دیگر او داخل زندان گذاشت به صورتی حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ده بنصیف بود که انا اعلمکم من عالم ترین شما هستم وقتی عالم ترین شده اللہ گفت نه نیستی برو اونجا مجموع بحرین برو افرادی تر است تو هم وجود دارن پس اینجا هم به همین صورت اینجا حضرت یاقوب علیه السلام به صورت دیگر فرمودن که فالله خیرون حافظ و ها رحمه رحمه نه محافظ الله شما کاری نمیتونی بکنی الله رب العالمین کامل محافظت کرد امام رازی رحمه الله قبلا یه جمله گفت فرمودن هرگاه ما به طرف غیر الله متوسط میشودیم مشکلات میشونم هرگه مستقی از خودش میخواستی الله رب العالمین مشکل ما رو حل میکرده اینجا ولما فتح فتحو متاعهم باست کردن از ها رو وددو ردت الیهم دیدن که به به فولها داخل همین گندم ها وجود دارد دیدن که اونها برگشت داد برگش داده شدین ردت الیهم اونا رو برگشت داده هم قاولو یا اوانا ناخاصل پدر جا اینجا ببین. این پادشا هم عجب مال هم داده، گندو هم داده و مطای داده. ما رو برگشت داده این هم و ما این هم سامان ما همه اینها رو به ما تحبیل داده اند. وقتی که حضرت یعقوب علیه السلام و نهار رو دید گفت بچه پر بودن ما نبغی حاضی حالا ما چی میخواهی حالا ما چی میخواهی این بزاعت ما بزاعت ردت الینا یه طرف ما اومده هم و نمیرو اهلنا. پس پدر جان ما میرین دوباره آذوقه میآوریم و به خانواده خانواده‌های خودمان و نحفظ اخانا برادرم خوب حفاظت میکنیم و نزداد کیل کیل به یک بار دیگر اضافه میگیریم چرا برادر با ما میجا قبلا 10 تا می آورد حالا 11 تا میآوریم حالا او رو با ما میفرست حالا اینجا دمانداره وقتی اینو دیدن فرمودن که پدر جان حالا چی می‌خوایم قبلا مشکل رفتن بود حالا که از بود ما اینجا هست وقتی پول ما اینجا باشه ما میتونیم راحت برگردیم ب پیشه حد متث و از اونجا آزه بیاریم یا مسئله بعدی بود که ما نبیم ما نافیه هست یعنی ما چیزی از تو نمیخوایم ما نبیم از تو ما چیزی نمیخوایم فقط بدهیم برا برادر با خود بگیریم بریم چون قبلا می پول بده حالا ما نلویم چیزی از تو هم ما نمیخوایم پول هم نمیخوایم چون پول دست ما افتاده حالا دیگه بزار که ما بریم و ده پیش مصر و پادشای مصر و از اونجا عزوغی بیشتر بیاوریم. حالی سوال اینجا مطرح میشه، آیا مگه استفاده این پولی که در کالا جایز بود جائز نیست. حالا شما میری خرید میکنید و در کالا شما اگر جنسی اضافه باشه چکار میکنید؟ اگر اینجا چند صورت داریم؟ صورت اول، اگر در کالای ما دوباره پول ما داخل کالا بود، میدونستیم به صورتی بود که گویی خود اونها برداشتا بیان استفادهش حلال هست یک نوع هدیه هست اما اگر در در مال و کالا آمده بود اما اشتباهی آمده بود وضع کرده اشتباهی کرده پارتیو علا مت کرده بیشتر مت کردش میدونی اینجا اشتباهی شده در این صورت این امانت هست استفادهش برای ما حلال نیست اما اینجا دیگه این صورت نه این صورتی بود که راہ حضرت یوسف علیه السلام در بارونا خودش گذاشته چون اینها خودشون بارها رو جمع کرده بودن این پود باید داخل بارها آمده بود حالا گویا کسی قصد هارو رو فرستاده پس بنابرای وقتی اینجوری باشه در این سور استفادهش حلال میشه در غیر این سور استفاده از مال مردم حلال نیست بعضی فکر میکنن که مال مردم میره اشتباه میشه چیزی خرید میتونه میگه آقا اشتباه بگه خودش داده. بابا اشتبای اومده کولهای زافر میگن نا خودش فرسته ده حالا استفاده بکنه این جوری نیست نبا این جوری ما عمل بکنی باید اول نگاه کریم چی گونه آمده از کجا آمده علت آمدن چی بوده اگر متوجه شده به این حدیه استفاده جائز در غیر انصوره استفادهش جائز نیست حال برادران باید می مصر برای گرفتن آزوغه اما اونجا شرط محکمی هده که و بود و فرمودن که لن ارسله معاکم من به نیامین رو با شما نمی فرستم باید اینجا بشینه چون که شما دیگه افراد معتبری نیستی شما سلب اعتماد شده اید لن ارسله معاکم حتی تو اتونی موسیق الله قسم بخورید احد و پیمان بندید که دوباره برمی گرمی. حضرت یعقوب علیه صلی اللہ علیه فرزندانش قسم گرفت. قسم میخورید، اهد و پیمان میبندید که دوباره با بنیامی بر بگردید چون اونجا از برای برگشتی یوسو علیه السلام قسم نگرفته بود اونجا اهد و پیمانی از اونها نگرفته بود به خاطرین باید فرموده وقتی که از اونها اهدی گره، پیمانی گره، قسم خوردن که ما بر میگردین آده های محکمی دادم سر فرموده که قال الله على ما نقول وکیل ما اما چیزی گفتی الله رب العالمین کار ساز شما که باز هم نمیتونی اینجا حضرت یعقوب علیه صلی اللہ صلی بودن که شما نمیتونی تا زمان خواست الله نواشه باز کار دست شما بر نمی این هست اصطلاح عقیده اصطلاح عقیده چون جلواته فرمودند که وقتی که اونجا امی نبی پرزانه الا, الا ان یو حاتب کم ملک رفتو جهت من می آوری الا ان بکن. مگر اگه مشکل اومد که در توان شما نبود حالا دیگه شما اونجا معذور هستید اگر اینجوری بود بعد بیایید اما در غیر این صورت که باید بیایید اینجا یک اصلاح عقیده حضرت یاق اول مسئله اینه آیا کسی که باید ما قسمی از کسی بگیریم در توانش نباشه چنین قسم جایز جایز نیست چنین این قسم جایز نیست باید قسمی گرفته بشه به صورتی با در توان طرف باشه کاری که ماورای طبیعت نباشه قسم میگیرند که کار خدایی هست فرمتو انجام بده مگر میتونه اینکه انجام بده پس حضرت یعقوب علیه صلات و سلام هنگامی که احنابر نوشتن اما احنابر نوشتن کامل مختاطانی فرم بودن که میآورید. آورید مگر این که کاری باش در توان شما نباشه از قدرت شما خالی باشه در این صورت شما که ملامت نیستید پس حضرت عقب علیه صلی اللہ وسلم اینجا یک دادم تو انسان باید اندازه توان خودش مکلک میشه بیشتر از اون تکلیفی نداره و مسئله بعدی این است که کفالت کفیل به نفر جایز ان زمانت با جان این هم در شریعت داریم کسی جرمی کرد، میگه زامین بیان حالا زامین گاهی سند میشه گاهی پول میشه و گاهی شخص میشه در شریعت هر دو, هر دو جایزن هم. اینجا همین زمانت به نفس آمده و جلوتر زمانات با مال ذکر میشه جلوترش هم که فعالت به ذکر میکنه پس هر دو تا زمانت ها در شریعت آمده و هر دو تا جایز هستند که انسان از اونها به یه طور زمانت ها رو بگیرد حالا فرزندان و حضرت یعقوب علیه صلی و وقتی پرموندن بری قال یعبونیه ای من لا تا من واحده از یک در وارد میست نمیشید و دخلو من ابواب متفرقه از درهای مختلف وارد میست میشید چرا اینجوری فرمودن؟ با هم نمیری چون اینها پیغمبرزادی بودن چون اینها برادران یوسف بودن دو احتمال اینجا داشت اینها ده برادر. یازده برادر برومن، تنومن، زیبا، خوشگل؟ دارن باهم بیرن جلب توجه، جلب توجه و امکان داره اینها رو چشم زخم بخورن از مرد و با خاطر نجاه از چشم زخم، اینجا فرمودند که شما دیگه از یک در وارد نمیشید، فقط از این چشم زخم های مردم در امان باشید، چون اینها فرزندان حضرت یعقوب بودن، برادران یوسون بودن، حداقل شبیه هم دیگر بودن، در زیبایی شبیه هم دیگر بودن. پس بنابراین این چیزو حضرت یعقوب علیه صلات و سلام به خاطرین فرمود اینجوری بریم ایک علتشین است و این هم در شریعت داریم حقن چشم زخم حق و چشم حق هست داخل صحیح بخاری کتاب و تلبی حدیثی داریم این شخص رنگ پریدو بچهی فرمودن که مثل که اینو چشم کردن حالا اینو اتعویزی بکنی اتدنی بکنی باعی بخونی، تا خوب بیشنی خود نبی مکرم اسلام اونجا دیگه اونو نشان دادم تعلیم داد که این دعا دعا بخونی تا که اینو خوب میشه یا میگن که سحل ابن خونی رضی اللہ تعالیم یک روزی با ایکی اصحاب کن رفتن برای غسلی و دوش گرفتنی در یک نحر آبی. وقتی سحل ابن خونی لباس رو کشید نفر به گوه بحبه عجب بدن زیبایی داری کمرواری کسی زیبا چقدر زیب کارم بیمار شد یویش افتاد اما پیش رسول الله صلی الله و علیه فرمودند که این جوری افتاد چکار کردی؟ که منجوری جوری گفته. رو علاوه زو بگی، آب و را جمع کن و روش بریز یکی از راهای علاج چشم همین کسی کا اگر چشم کرد. ہمین که اگه چشم کرده باید همین کارو کار رو بکنه، و بکیه، غص رو بکنه، آب و زورشو داخل زرد جمع کر روش ببریز، خمیسه. و فرمودند که الله بر رختها اطراف او اونجا م... برکت نگفتی. این کسانی که چشم زخم اونها تأثیر داره وقتی کسی رو میبینه باید باید باید که ما الله لا حول ولا قوت الا بالله بعد این بگن کسی که چشم زخم داره بعد فورا جلو اینها رو بگیره ما الله لا حول ولا قوت الا بالله یا بگه که بارک الله بارک الله تا از اون چشم زخمها در عما باشه. پس این چشم زخم برحق احادیث رو نبی کریم فرمودیان پس اینجا حضرت یوسف حضرت یعقوب و السلام بنابر همین چیز فرمود حالا این ده برادر 11 تا برادر با این شکل زیبا وارد دره وارد مستبشن قطعا اینها اونجا دیگه چشم می زخم نمی‌خورن و اینا بیمار میشن و چشم زخم انسان رو از بین می‌بره و خیلی آدم‌ها رو هم می‌کشه خیلی خطرناک است خیلی خطرناک در حال یک موج منفی هست که از چشم ها بیرون میشه او رو شخصی اصابت میکنه و او را داغون میکنه علت بعدی که حضرت یعقوب علیه الصلا و السلام فرمودن که از ابواب متفرقه وارد نسمیری علت دیگری هم داشت اون علت این بود که چون سری او قبل که رفته بودن مورد اکرام پادشاه قرار گرفتن خیلی از اونها پذیرایی کرد خوب استقبال کرد حالا این سری وقتی داخل برن قطعاً اینها دیگه دشمن پیدا میکنن و بار علیه صوتی این شینات واره اومده اینها غیبی هستن پیش پادشاه میرون حالا محله صوتی اومده بخاطر حفظ از, از اون صوتیا فرمود ما با ازره های مختلف از مسیرهای مختلف, مختلف داخل می میرین کسی توجه نمی اما ان با هم باشی مورد توجه قرار می و وا بخاطری حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام این کارو کرده فرمود و ما اوغنی عنکم من الله من شیء اما بعض حضرت عقوب علیه صلات و سلام مسئله بعدی سرمودم اما اما اغنین کمن الله منشه من کاری هم نمیتونم انجام بدم یعنی در تدبیر انجام میدیم اما اگر تقدیر باشه در مقابل تقدیر تدبیر, تدبیر، تاثیر قداره همون قول مشهور است که منده میکنه تدبیر خنده میکنه تقدیر بنا تدبیر میکنه اما تقدیر کار خودشو انجام میده اینجا حضرت یعقوب علیه سلات دستی درست که فرزندان من تدبیر ما میتونیم انجام بدیم اما تدبیر ما تقدیر و تغییر نمیدهد پس بنابراین این مسئله بعدی این است که در امور انسانها باید تدبیر را انجام بدن تدابیر را انجام بده خود عمل به تدبیر این هست تقدیر این هست توقل توقل چون میگن؟ بر خود این عمل بکن در بار توکل زانی او شطوری کار کارو انجام بده کارو انجام بده نتیجه رو الله رب العالمین بکون اینجوری حلا من خونه نشاستم توکل دارم الله خودش میرسونه اینجوری نه توکل کار کارتو انجام بده نتیجه حوالی الله رب العالمین باشه اینجا هم همین چیز بوده پس نبی اینجا تدبیر کرده پس تدابیر رو به کار بردن این یک امر شرعی است نبی مکرم سلام صلی اللہ علیه و سلم در جنگ احود دو, دو, دو تا زره پوشیدن، دو تا زره پوشیده. پسی خلاف توکل نیستی داخل جنگ رفتم اما بعض نبی کریم هم زخمی شدن پس تدابی رو باید بکار بره اما حنگامی که انسان تدابی رو بکار بیبره فورم باید اعتماده به الله رب العالمین بگذاره معنی کار من تا اینجا بود اما آینده کار در اختیار من نیست پس بنابراین جلوی دسته الله رب العالمین است پس مسئله بعدی این شد که خلاف تدبیر نباید عمل بکنین تدبیر رو باید انجام بدیم. و کار همون میشه تقدیر باش اگر ما تمام تدابیر رو بکار برین اما اگر تقدیر باشه هر همون چیز میشه تقدیر تدبیر اونجا تأثیر گذار نیست اینجا پس بنابراین حضرت عقوب علیه السلام از دین استفاده کرد فرزاندار رو فرمود دیدنش حالا این کار رو انجام بدید اونجا آقی رفتن باید فرمود که این الحکم الا لله اما عبر همون چیز اللہ بخواه همون کار پیش میاد الله اللہ بخوا. غیر از اللہ رب العالم هیچ کاری صورت نمی گیرن باید متوکلین به با این توکل میکنن. اینجا این قسمت آیه خودش یک درسی هست، درسی هست برای بزرگ، پس در اون جاهایی که, که احادیس اومده، هفتاد هزار نفر داخل بهشت میرون بدون حساب و کتاب، آخه میفهم اونهایی که تعویز نمی کنند، دم نمی کنند، و قره هایی فرمودند، فرمودن که و علا رد هم یتوکلون، بر پروردگارشان توکل میکنند، یعنی انجام میدهند، اسباب را، اما نتیجه حوالا الله رب العالمین میکنند. هرگز اسباب را مؤثر در انجام کار نمی دونن. دارو استفاده کن، اما نبود دارو به نشان الله شفا میده. خیلی دارو, یک دارو هست، سه تا می میرن ده تا می ده تا میشم، ده بود بیماری مشترک بود، پس تظاهری خاص دل الله نباشه. دارو کاری رو انجام نمی ده. اسباب را استفاده بکنیم. اما نتیجه رو حواله ذات باری تعالی بکنیم. و بعد این است که تدابی رو انجام دادم. پس تقدیر. تقدیر ما به دست اگر در تقدیر ما به این صورت باشه، چرا باید وقتی که جلوتر فرمودند وقتی که تقدیر اینجوری بکنم، این الحکم الا للا، و ما اغنیم کن من من شیح. من کار نمیتونم بکنم از عمر اللہ، هرچه الله بخواه اونجا بشه، پس وقتی اینجوری میشه پس را تدبیر به کار بریم اشکال دوباره میآید آید و خود حضرت یاقوب علیه السلام فرمودند که من کاری نمیتونم بکنم با وقتی کاری نمیتونم بکنم در این صورت پس بنابریم شما از این داخل میرید و داخل که میرید اما آقابت کار همون است که الله میخواهد پس را تدبیر گفت چرا اینجوروارد بشه چرا کارها رو نکنید این هز اشکاله جوابش این است که ما آدمها ها مکلفیم که روی شریعت عمل بکنیم ما مکلفیم که باید این مراحل رو تیب بکنیم و اون کار حوال الله بکنیم اول خاطر امر و وظیفه ما هست مثلا داخل حدیث داریم که نبی مکرر اسلام فرمودند وقتی که قضا خوردی شب دستهارو رو بشورید و بخوابید، اگر نشستی خوابیدید و حشری در خواب اومد شما رو گاز گرفت و ازیا شدی بیمار شدی یا مردی حالا گناه بر خودتان هست یعنی چه چه وقتی میخوابی شاید عقرب بیاد دوریت علاوه حالا اینکه راغن هست یا بوی غذا میده میاد برای خوردنش و انسانو گاز میگیره اگر اینها این, این تدبیر رو انجام داد دستاهر دا شست خوابید باز عقرب داخل دا خواب اینو زد و کشت این شهید میشه میره بهشت چون کار درست انجام داده اما اگر انجام نداد حواله تقدیر که الله از من چرا بشودم تقدیر باشه میمیرم تقدیر نباشه نمیمیرم اینجور اگر کرد و مرد الله رب العالم به این شخص هیچ اجری نمیدهند چرا که اینجا خلاف عمل کرده این اول این است دو این است که خود تقدیر به دنو هست شاید این از اون نوع تقدیرهای باشه که الله رب العالمی چه در تقدیر نوشته اگر این بنده من این تدابیر را عملی انجام داده این کار صورت میگیره و اگر انجام نداشته، صورت نمیگیره. اگر فلانی رف پیش دکتر شفا حاصل میکنه، اگر نرف شفا حاصل نمیکنه. شاید اینجا از رو تقدیر باشه. و برای ما تقدیر پوشیده هست، چون تقدیر پوشیده باید ما عمل میکنیم. چون در حدیث داریم که نبی مکرر اسلام فرمودم کسانی که سلایر رحمی میکنند، اونها زیاد میشه، اونها سلایر رحمی میتونند، مال اونها زیاد میشه. میگه اگر این بکنه این قلب عمر می اگر مکه عمرش اینقدر میشه پس این نوع نو تقدیر همین است پس چون که یک نوع تقدیر به ایمان داریم حضرت یعقوب علیه السلام فرمودن که شما این ها رو عمل بکنید اما همون چیز میشه یک تقدیر شما باشه و غیر از تقدیر کاری صورته نمیگیره ولما دخلوا المحيس امرهم ابوهم ما كانا یغن من الله من شيء اینها وقتی که از مصر هر از کنعان هر کار کردن و در مسیر که با برادر بنیامین بودن تهوی بعضی از روایات از همون که از کنان فاصله گرفتند، حالا شروع کردن برای اذیت کردن بنیامین. اینا عجب برادرایی بودن. شروع کردن برای اذیت کردن میزا دنیا بنیامین رو. چیکار چیکار کردی تو با پدر؟ اول یوسف حالت رو تو رو بالا خودت کردی. او بدتر اینکه اونجا عزیز مصر گفته بنیامین رو بیارید. از یک طرف مهر پدر از یک طرف طلب پادشاه از دو جهت مورد اکرام اصلی مورد اعزاز و خاطرین گفتند که الله خوب از دیگر اما بنیامین در کل این مسیر که صحبت نمیگه خاموش بود چرا تنها بود اون ده نفر میان تنها بود سکوت می‌کرد سکوت کرد و تا اینکه رسیدن به مصر وقتی که رسیدن الله میفرماند که اینها همون کارو کردند یعقوب فرموده بود از این درهای متفرق وارد چی از یک مسیر نایکی نا از این را که از اون را بعد داخل میش هم دیگه می‌رسید شما اونجا که اما کاری پیش نه اومده الا حادثن فی نفس یعقوب قضاها مگر همون چیزی که در دل یعقوب بود همون که شد اما کار دیگر درست نشد یعنی چی یعنی حضرت یعقوب از این ها قسم گرفت که بنیامی رو آورید اما اینجا که این مشکل حل نشد بنیامین اونجا موند اما اون چیزی که یاقوب گفت به اینها اون حاصل شد چی بودون؟ که شما از حسادت در امان باشید این در از حسادت در امان باشید این در امان مادم کسی اونها رو چشم زخم نزد، چشم زخم نخوردم این که شد اما حضرت یعقوب یا یا علیه سلات و به اون نقطه به توجه نکرد چون توجه نکرد همونجا مشکل همونجا پیش آمد پس این مسئله بعدی این از که اگر کسی نعمتی داشت نعمت را نباید همیشه ظاهر کنه میش باید نعمتو محفوظ کنیم چون دشمن داره حسود داره و مشکل درست میکنه کل ذی نعمت محسودن هر صاحب نعمتی حسد کرده میشه پس یعقوب الله علیه السلام این در داد که نباید هر چیز خود را برای مردم تعریف بیم من فلان چیزو دارم بعضی ازی مردم میکشن فلان چیز دارن این اینو داره اونو داره نباید افکار خود را اعمال خود را کار خود را برای هر کس تعریف کنید. چون مشکل درست میکنن حسدها مشکل ساز میشن پس اینجای درس بعدی بود که باید نعمت ها رو مخفی نگه داشت هرجا نباید نعمت ها رو ظاهر کرد حالا الله میفرماید که اون حادثه که در قلب حضرت یعقوب بود اون حالا شد اما کاری درست نکرد یعنی پسران دوباره با ناامیدی از مصر در میگردند اونجا رفتن پیش حضرت یع یا... حضرت یوسف علیه الصلاۃ و رو هارشون وقتی سوناخ بعض هم دستور داد که از اینها خوب استقبال بشه یک پذیرای خوبی اینها انجامید در یک تالار اینها نار وارد تر یک سیاست دیگری انجام داد اونجا چون وقت داره تمام میشه یک سیاست دیگری انجام داد این بود که بعد از اون حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیه و السلام فرمودند که هر دو برادر در یک اتاق استراحت کنند چون 11 تا بوده دیگه تنها میو دو نفر در یک اتاق دو نفر در یک اتاق میخوابم وقتی دو نفر در اتاق هم می رفتن بین تنها بود بنیانور پیش خودش برده. خاص که بنیین پیش من بیاد تا بتونم با او تنها صحبتی و اختلاطی داشته باشم. وتونها رفتم باز هم بدتر بابا بنییان پیش پادشاه در اتاق پادشاه ازانچه خبر اونجا از محبت پدری محبت پادشاه اینا اسباب ادت میدن. تنها که بعد از ظول حضرت یوسف علیه صلات و سلام بعد از اون دیگه به بنیامین گفت که من برادرت یوسفم و طبق از روایه خود بنیامین هم شناخت این یوسفه قمید من برادرت یوسفم حالا دیگه خیلی با هم نشستن اختلاف کنن از پدر پرسی اما اینجا داره از پدر می پرسی بعض هم فکر پدر نیست که حالا ما اینو نگاه بدارن پدر چه حالی میشه. شی اون از بیرش بیرون. بعض اون کار حضرت انجا انجام اون را داد درد یاقوب یا از قبر بیشتر میشود حالا اینهارو گفت و اختلاف کم باید فرمودند که من کاری میکنم که تو را پیش خودم نگه بدارم اما نگران نباش باید فرمودند که الله در معقبل الله بیفرمایند که نگاه کنید در مورد یاقوب بدگمان نباشید که انه لذو علم یاقوب خیلی علم داره ما بهش تعلیم علم علمی. زیادت زیاده علم هست. یعنی آقوب اشتباه نکرده این تدابیریک انجام داد. اشتباه چی نکرده؟ و فکر نکنیک یه شریعه آقوب نمی یا اشتباه نه کاری سراسر درست بود. و کامل در نقشی موفق شد. و از حسابون نجاد اما چیزی که الله بخواد همون کار میشه. ولكن اکثر الناس لا یعلمون نمی دونن می میگیرن اما انجوری نیست. ولما داخلو علی یوسف و یکی پیش حضرت یوسف علیه السلام برادران رفتن آبایلی اخا برادر پیش خودش جادا جا همین جا بعض علما میترمند که به این صورت جادادم. داد یعنی تنها در این اتاق پیش حضرت یوسف و حتی خانواده خودش هم اونجا گفته بود که این برادر من بنیامین هست این برادر تنی من هست و بقاطلین دیگه این جا می این نگه می وقتی اینجا رفتن قال اینی انا اخوکا فلا تبتئس از من برادرتم اینی انا اخوکا تاکید کر اینی انا اخوکا نگفت که انا اخوکا تاکید وره تاکید آورد که تا اون باورش بشه شاید امکان داشت به قبول نکره. بابا این برادر من کجا پادشاه مس کجا اینها خیلی تفاوت دارن چهل سال برهما مشهور شده گم شده برخورده برده امکان داشت که باور در باور خود به اصطلاح بنامید این حرفا نروند فرمود که اینی انا اخو کا تاکید کرد که منم برادر تو پس اینو قبول کن حالا تب تیس نگران نباشه من ایک کار انجام میدم به بماکانو یعملو چیزی که اونها ها میکنن تو حالا نگران نباش شاید یوسف هم خواست که نگهبانه داره تا این صورت شاید بتونه پدرشو پیش خودش بیاورد و پدر هم بی نمی اومد و یا این که بخاطری هم نفرستا با اونها چون میدونیس بی که برادرن دوباره اذیتش میکنن قبلا اذیت کردی برادر راحت میتونس بگه که بنیامین تو برو پیش پدر خبرش بده من اینجا هستم اما این کارو نکرد چون شاید در مسیر را دوباره مشکل درست میشه و حسادت مانند قبلاها تکرار میشه فرمون حالا نمیفرستا پس بزار که پدر اینجا بی تا هم پدر رو حفاظت بکنم و هم برادر رو حفاظت بکنم و خواست برادرها رو در خودش کامل بگیرن حالا وقتی که بیرسور سو حضرت یوسف علیه السلام فلما جهازم به جهازهیم وقتی که کاروان و آمادکر پر از بار کردن حالا حرکت کنیم طبق بعضی از روایت در سور داد که حالا دیگه خوب بزارید داخل بارشون یعنی زیاد بینها این آیت بکنم چون حالا که بیخی گروگان بگیرم بی اینجام و بعد از اون اونو بارهای زیادی دادم و جعل ثقایت فی رحل اخیهی اینجا امون لیوانی که مخصوص پادشاه بود در بار برادرش گذاشت حالا سوال این متر همیشه چون جلوتر میگه که ثم عضلان معظم اجتهال عیر اینکه کلمه صاریکون کاروانی اش با دید عایق واقعا نیست و الله صلوات و چنین کاری کرد؟ این را متحن به دزدی دی کرد این خیلی محل بحثه که کار و برادر نمیتونه انجام بده پس این از که اینجا کلام به این صورت نیست. فقط این که داخل بار برنیامین گذارش تا اینجا هدفی نیست بود اما جلوتر که وقتی کاروانی فاصله گرفته، تا فاصل نگرفتن جا دیگه تحقیلی نشد دی به محضی از مس فاصل گرفتن دوباره از ازدن معزنون ندام او کاروانی ها شما واسد شما دزدی کردی پس معلومش اینها رفته بودن تا دوباره دنبال اونها قاصل فرستاده شد اونها رو برگردونی تا اینجا به نیامی داری بر می میره و بعد از اون دیگه پس این اعلام که شما دزد هستید این کلام حضرت یوسف نی همون کسی هست که دنبال لیوان پادشاه میگشت وقتی بیاید لیوان نیست، دنبال گشت ترسید. اگر لیوان اینجا گم بشه، حالا خیر مرحم نیست اینجا. چون این لیوان بعضی میگه از طلا بود و بعضی میگه از نقره بود و بعضی میگه از ذبر بود. یک لیوان بسیار قیمتی بود که هم با اون آب میخوردن و هم وزن میکردم. یه چیز خاصی. و بعضی میگن که سوار یعنی لیوانی که دو طرفه دسته داشته باشه؟ یعنی در خود سفاله هایی که دو طرف دست دارن این میگن سواد این دو طرف دست داشت به این سوره میگیده فعا میخوردن در حال این گذاشت بعد از این که گذاشتن دو حرکت کرد، کر بعد فرمودن که ایو حلیر ایو حلیر این نکن ساری خورد ای ها شما دوست دیده حالا بیایید حالا مسئله بعدی. اینجا حضرت یوسف علیه السلام این کار مالیشان فقط قرار همون لیوان کارش بود دستود اینو اینجا بزاریده یا خودش گذاشت کسی هم متوجه نشد فقط خودش بود و با بنیابین اونها نمی دونستن لذا اونها این کار رو گفتن چونکه الله میگه و جعل قرار دا استقایتا فی رحل اخیه. اون قرار داد بس معلومش اینجا قرار دهنده یک نفره نفر بودن جعلو اگه اینو اون خادم ها می کردن معمور ها می کردن بکار برده می شود. یا این از که دستور به خاطر دستور مفرد آمد به هر حال اونها خبردار نبودم و نخواستم خبردار بشه تا ترهش کامل بگیره پس اینجا مسئله بعدی آیه هیله کردن جایز جایز نیست اینجا پیغمبر داره هیله میکنه. پس هیله شرعی که در خود عوامونس خیلی باستا بدیداره ایم هیل ملایه است هیله شریت راوس کرده اندیور نیست مواجه باشید که در بعضی کلمات خطر ایمانی هست اینجا مقام نبوت هست با اندیور اگر ما بی ادبی بکنیم خطر بسیار سنگینی آدمها رو تهدید می پس حسب ناباری اینجا خود هیله شری اگر کسی هیله بکنه تمام مصلح این هیله از یک مسیر غلط بیرون بیایم و در مسیر درست قرار بگیرم یا حرام بیرون بیاین و بی حلال برسن این نو هیله جایزه اما به هیله باشه که من حلالو ساقط بکنم و حرامو احیا بکنم این حرام اما اگر هیله کر که من از حرام بیرون کار حلالیان جابیدم معاملهش معامل سودی ربوی هست از این معامله بیان بیرون تمامله من حلال باشه چنین هیلی در شدیت حلاله و داخل صحیح بخاری به این سوره حدیثی دارین وا و که خیبر فتح شد بعد از فاتح خیبر و مسئول درختان و نبی کریم صلی الله علیه و علیه یک روزی مقدار غذای جنیب آورد یک دو خرما است وقتی که آوردند نبی مکرم صلی فرمودند که آیا خرمای ما اینجوریه ما ها داریم اونجا گفتند نه پس از کجا آوردی فرمودند که از او خرمای ما داشتیم دو کیلو دادم برای یک دو دو صا با یک ساعت من معاوضه کردم وقتی این جورگار نبی کریم فرمودن که او این که ربا است این که سود است این کار تو درست نبود پس فرمودن که به اجنیب و به دراهم این خرمای جنیب را با درهم بفروش و با خرم با همون پول‌ها خرمای جنیب بخرد یعنی خرمای که اینها اینهار بفروش درهمش بخور و با همون دره از این خرماو بگیر سرانجام کار یکی هست اگر دو کیلو بده مقابل یک کیلو بعد این خرما حاصل میشه که این خبر ماه را کور کنه، با کود واره همی خبر می‌گیره. نتیجه کاری که بیشتر نیست، اما اون مسیر حرام هست، این مسیر خلال هست. این زنا با نکاح میرید، خلال میشه، بی نکاح می زنا، زنا میشه. در در اصلی که کاری کار, کار بیشتر نیست، هدف یک هدف بیشتر نیست، اما از مسیر وارد میشن، خلال هست، از دی مسیر وارد میشن، حرام هست. پس قیل شرعی، اگر کسی انجام داده به این صورت که از حرام بیرون بیایم، و در حلال وارد بشم این نوحیله حرام نیست و این در شریعت راه داره یک راهش اینجا بود که حضرت یوسف علیه صلات و سایی کار انجام باد و یک راه دیگه داخله جلوتر الله رب العالمین از حضرت یعقوب ذکر بیکنم یعقوب قسم خورده بود خانم را من صدر به شلاغ و فهموده که خانم خیلمت کرده چرا بتنبیه بشه؟ خود زیغ سن بیدیک بگیر که بستی روش بیانداز حالی بستی روش انداختی حالا تو او رضبی قسم تمام شد اینجا الله رب العالی بیش تعلیم دا به این صورت از این گناه قسم ببیرون بی پس هیله به این صورت حلاله در غیر این صورت هر حیله باشه حلال نیست اون حیله ها پس حیله های شرعی رو باید درست ما یاد میگیریم قال و اقبل و علی ماذا تفقدون؟ گفتون چی چه خیبری؟ چی گم کردی شما؟ وقتی دنبالش افتادن حال نفس خود سوال ملک ما اون نیوان مخصوص آب پادشاه رو گم کردی پس اینج یه مسئله بعدی است این که سوال ملک اومد نیوان پادشاه پس یوسف علیه الصلاۃ و سلام به مقام پادشاهی رسید چون قبلا گفتن که کل پادشاه اختیارات را در اختیار حضرت یوسف گذاشت خودش رفت کنارگیری که فقط اسم پادشاه بود کل اختیارات مال حضرت یوسف علیه الصلاۃ و سلام شدند خاطری فر سوال ملک یا الی ماره پادشاه اصلی بوده. هم والی من جا بی حمل و بع وانبی زعیم هر کسی که این بسلا گم شده ما رو آورد من بیش یله یک بار شطور میدم وانبیی ضعیم و من ظمنم. بیارید اونو بیاری البار شما هست و بعدم خاطری که آوردید انام میدم یک بار گندم دیگر اضافه ببرید. اونا خورا ناراحت شدن که ما میدونیم ما دوز نیستیم ما پیغمبرزاده هستیم ما در این شهر نا اومدیم که قالوت اللهی قسم به خدا لقد علمت ما اجئنا لنفسد فی الارض نا در دنیا ما فساد میکنیم فقط برای فساد ما اینجا اومدین میدونید که ما برای گناه نا اومدی برای دزینی نا اومد ما پیغمبرزاده هستی حالا از خودشون دفاع کردم اما کن صادقین ما دوز نبودیم حضرت یوسف علیه الصلا حالا چون که در قانون پادشاهی وقت ها دارم خلاصه میگم که چونکه تجای برسیم تفسیر اصلی سوره دوباره انشار در همون روال تفسیر اگر رسیدیم و زندگی در همون روال اصلی و فصل دوباره توضیح میدین آخر کلنگ میگیم اینجا فقط داست اصل داستان و تجای رسونیم و حضرت یوسف علیه السلام تون در قانون پادشایی بود که انسان آدم های غیر مصری را تونستن بدون اجازه جت تحویل بگر و نگاه دارند قانون می‌بست این بود که ادم‌هایی غیر قدمتی بودن نگاه داشتند ها جایز نبود برای اونها قانون بود و این هم دسری نبود و حالا و نگاه داشتن او هم بدون جرم جا اینجا درست نبود با جرم هم درست نبوده. جرم ثابت شده بود حالا گفتن که خو اگر اینجوری هست فما جزاء او این کنتم کار اگر دروغ گفتی حالا پاداش چی؟ چار کنیم با جرم چیه؟ وقتی اینجوری گفتن حالا گفتن که جزاء قال و جزاؤه بن وجود فی رحلی هر در هر باری پیدا شود خودشو بیگیری جزاش خودشه خودشو بیگیری ببری برده بکنی و این هم در دین حضرت شریعت ابراهیمی بود اگر کسی جای دزدی میکرد همون آقا رو گره نگاه می‌داشتن و ازو کار می‌گرفتن چون شریعت حضرت ابراهیم بود و اینها بر دین حضرت ابراهیم بودن و حضرت یوسف هم اینها رو حالا این رو آورد اینها رو گرفتا آوردم تا اینجا کار درست دارم پیش میلی وقتی که رفتن دروتر فبادا ابی اویی تهیم اول زحره های انها رو باز کرد بارها باز کرد نگاه تا آخر اسیب بنیامین. وقتی که از بنیامین رو باز کرد گفت آه یک داخل این هست این پس دوز همین بینیامی لی انها داد بیداد کرد وقتی گفت این داخل این هست و برای یوسف علیه السلام بحانی اومد که میتونست طبق قانون کنانی ها حضرت ابراهیم علیه السلام و یعقوب برادر رو نگه بداراد و اینجا میفرمان که ما کانا لیا خوز اخا فی دید الملک الا انیشا اللہ نمیتونست که طبق قانون پادشاه نگه بداراد مدیبا اینکه الله بخواد نرف و درجات منشا من و فوق کل ذی علم علیم ما کسی سیخان در جاهش و بالا می‌برین یعنی کار یوسف رو الله کرد. کار درستی کرده، خیلی دانشمند بود، خیلی فهمیده کار کرده بود و بدانی فا کل ذی علم علیم هست. یعنی اینجونی که علم تمام تمام ایشان، هر عالمی هست، بالو عالم تری هست، بالو و تری هست. عالم‌تر تر رسید به نبی مکرم اسلام و والا پیغمبر تر الله رب العالمین هست. افلوزی حضرت عبدالله بن عباس بیان خیلی عالمی ناراحت رو گفت: نه بال هر عالمی عالمتری چون سوال قبلا پرسیده شده بود اصلا عبدالله پرسیدن عبدالله جواب داد که بله فرکل ذی علم نالب من اونجا پرسیدم چون اینجوری گفتی پس تو از اون عالمتری ناراحت شده بخی اینجوری نگو از من هم عالمتر هست پیغمبر هست صحابی دیگر بودن و بعد الله رب العالمین حضرت موسی گفت که من عالمترم الله که اینجا به صلا یہ که دوش مالی داد حالا کمی باید بدونی که عالم تر هم وجود داره. پس هر جا عالمی باشین قطعا بدونیم که افراد عالم تر هم بالاتر وجود دارن و اید در نزد این نفر خاصی نیست. هیچ کس نمیتونه علم را به تنهایی احاطه بکنه. عالوی یاسریق فقده سراغ اخون لهو له قابل گفته اگر دوزی بکنه این بابا اینا سابقه داره. برادر شن 2 مراذر دوز بوده این دزدی کرده پس الله دیگه چرا ما را بلاابت میکنیم؟ بعضی گفتی ان که بعضی گفته یوسف علیه و والسلام دزدی هرگز نکرده اما هر جا حضرت یوسف را همین رنگش حالا مشخص درست میکنه اونجا که از مادر متولد شد و وقتی که نبوغ گرفت خیلی زیبا بود عمهیش خواهر حضرت یعقوب دختر بزرگ حضرت اسحاق این فرزند بزرگ حضرت اسحاق عمه بود که از یاقوب علیه السلام بزرگتر بود وقتی دید که این خیلی زیبا هست گفت باید اینو بدی پیش من نگهداری کنم خیلی دوستش دارد و کمربند حضرت اسحاق کمربند خیلی, خیلی خصوصی بود از انبیاء بود و عرص رسیده بود به امهش و همیشه همین کمربند به فرزندان بزرگتر منتقل میشد. شود رسیده بود به دست امهش امی آمد وقتی که حضرت یاغو اومد پیش خوهرش که کف من نمیتونم یوسف را رحا کنم محبت یوسف من نمیگذاره حالا یک بده خوری خونه یوسف را هم وابسته بود خیلی زیاد پدر هم وابسته بود خیلی زیاد پدر را که فرزندش فرزند شبیاری حقش بود اما امی نگذاره و حالا چند روزی بذار تا خوب نگاهش کنم تا سیر بشم بعد و بر چند روز گذاشت اخروزی اومد کمربند روی حضرت یوسف بست و لبافت پوشانید و الان وقتی خاص بره اعلان کرد کمربند حضرت اصحاب بود و قانون همین بود دین کرد هر جا پیدا شد باسه بالامون همون گاش تنگاش تا اونجا نبود خونه رو علو نگاه کرد اونجا نبود حالا لباسا بچار بیرون کنش به چیزی خودی بسته روی حضرت یوسف بسته بود این خودش نبسته بود این امن بسته بود به گفت گفته اگر دوزی کرده این هم دوز بوده قبله در حالی کار خودش نبود دوباره چندین سال دیگر تا زمان امن بود یوسف را نگذاشت بود این عشق یوسف هر جا اونها رو بی خود بیکر اینجا همون چیز گفته و وقتی اینجور گفته حضرت یوسف عنه سلات و سلام خیلی و فاسر رها یوسفی نفسه چقدر یوسف بزرگو میدول درند روغ میگم میدول سینا جانیان و اینجا که برادر گرفته شده اونجا پدر پیری اونجا هست به جای اینکه اصرار کنن که برادر راه بکون دارن اطمینان ولی بله اگه غدوزی کرده اینها سابقه دارن در حالی که انجا اینا بسته بودن قسم خورده بودن که ما یوسف را میاریم و اینجا بواید یعنی انجا پیش پادشاه اصرار میکن بر آزادیش نک مهر تایید میزدن اینا خبردار نبودن چرا گفتن که اگه دزدی کرده برادر جی قبل از قبل هم دزدی بوده این جا دیگه بعضیه اف اثر را یوسفی نفسه یوسف با خودش گفت اینها دیگه خیلی بدن اینها نگون توهما هم می‌زنن ولن یب دیا اللهم برای اونها ظاهرش نکنه قال انتم شر و شما خیلی آدم بدی هستی با خودش میگه اینا چقدر بدن یه ایمان داره معنی بعد این است که خودش رو مخفی نگه داشت که من یوسفم ظاهر نکرد اما بنه ها گل شما خیلی بدین. شما ندیده داری تهمت میزنید. شاید داخل بسر خود کالایش رفته باشه یا کسی دیگه گذاشته باشه یا اونجا اون براادرش ما داری تهمت میزنش و اونجا بوده، آشاید دی کرد داری میگی که برادر دوزی بوده برابر گم شده بعد از کالا گم شده چرا حالا باز داری حملون رو تهمت میزنید. خیلیش ما آدم های بدی هستی. بعد از این دیگه، حضرت یوسف علیه السلام گفتنا دنیای یعنی من باید باشه دنیای یعنی هیچ چی نمیگه ساکت چرا داستان از به هر حال بعد از اون دیگه اونها گفت حالا ما رو نگاه بگی گفت نه من کسی نمیگیرم میکنی از ما کسی نگاه بده اونو ما و نه کنم نیامین بنیامینو نگواز جون هار فرستا او برادر بزرگ دیگه همونجا داخل مصر فیشه در مصر ما و تازوان الله یا برای برایمانی حکمی نازل میکنم یا پدرم ما رو میگه بیام که نه تازمانی که نفسته منگه کنعان نمیروم تا, نمی تا داستانش طولانی دیگه اینجا تمام میکنیم و بچوت آخرین جلسه هست و بعد از اون دیگه کلاسای تفسیر بعد از اینکه اومد و 30 گرفتی هفته بعد از اون خلاص تفسیر همینجا بعد نماز ایشار روز شمبه دوباره انشاءالله اصل صحابه برگزار میشند انشاءالله برحال اینجا دیگه اینها رفتند و دوباره آخر داستانی حضرت یوسف علیه سلاط و سلام پی پیش خود فراقاند و جرمونها ثابت شد و خواب هم تعبیر شد و الله رب العالمین به این صورت که ان آنیها رو به مصر منتقل کرد. همون اشخالی که مشرکین گرفته بودن که چرا که ان آنیها به مصر رفتند رب العالمین هم این داستان نازل کرد برای تسلی نبی کریم صلی الله علیه و که بصورتی که اهل مکه دارا شما رو بیرون میکنن اما دوباره شما مالک میشید به همین سوره همین داستان پیش رو نبی کریم از مکه بیرون کردن رفت مدینه منوره دوباره نبی کریم برگشت اهل مکه رو گریم و تمام اهل مکه دست نبی کری اومدن به صورت کنانی ها برادر دست حضرت یوسف اومدن اینجا یوسف فرمونه که لا تسلیب علیکم اليوم حالا هیچ ملامتی شما نیست اونجا نبی کریم در مکه مکرمه بایتی مکه رو فات کردم و خیلی ظالمان نبی کریم بیرون کردم چقدر اذیت کردن؟ چقدر صحابه کرام شکنجه ها دادن زمان نبی مکرم اسلام خ داخل مکه مکرمه وارد شده سر پایین پایل گرفته بود و فقط با با اشک چشمهای اشکوار تلاوت میکرد که این نفتحن علک فاتحا مبینا بعد از اینکه بیت الله رو گرفتن تمام اهل مکه در دست نبی کریم بودن حالا چیکاری میکرد؟ 20 سال نبی کریم ازیاد کردی بودن این همیشه شکنجه ها داده بودن نه در مدینه آرام گذاشتن نه در مکه رو آرام گذاشتن اما نبی بکرا سفر نمودن که ما تران ما افعل بكم شما چه فکر می کار می کنم فرمودن که شما برادری مهربان هستی اخین کریم ابن اخین کریم کدی شما مهربان هستید اما با ما کاری نمی کنید فرمودن که انی اقول كما قال اخی یوسف اذھبوا فانتمو طلاقا من هم به منان دیگه برادران یوسف فرمودن که لا تسری علیکم اليوم من همین چیزو میگه هیچ ملامتی بر شما نیست اذھبوا فانتمو طلاقا بری همه شما آزادیدی اینجا هم نبی مکرم اسلام همین کار آنجام دا. این مناسبت همون سؤالی بود که از حضرت نبی مکرم اسلام در مورد داستان یوسف سؤال کردی بودن به اینی همه اینها در زندگی نبی مکرم اسلام آمدن قبلا وعده کردم که ایک روز بیام شمائل نبی کریم و برای شما کامل بگم متاسفانه حالا فرصتی گیر نا آمده